اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا مولانا يا فاطمة الزهراء السلام عليكم يا أهل بيت النبوبة الحمد لله ورد بحس الدلالاته روایات وجودات نازنین اهل بیت اسمت و تهارت بر وحدت شخصی وجود شدیم که عرض شد که از روایات متعددی به نحف سریح نخی وحدت شخصی وجود از جانب عیمه معصوم علیه مسلم رسیده و بیان شده که به بعضی از اونها اشاره شد و من به یک دسته دیگری از این روایات اشاره بکنیم و انشاءالله وارد استدلال قائلین به وحدت شخصی بشیم. دسته بعدی روایات فراون است که روایاتی است که بیان شده که ما الله همه مخلوق یک خداست و غیر خداوند متعال همه مخلوق اند. مخلوق لامنشای هستند. روایات متعددی در این زمینه بیان شد بعد از طرفی خودشی در لسان روایات اهل بیت اسمت و تهارت به خداوند متعال اطلاق می شود و خود جناب مرحوم کلینی رضوان الله تعالی بابی رو در کافی به این اختصاص دادن که روایاتی رسیده که ایمی محسومین فرمودن که اشکالی ندارد به خداوند متعال شیع و به ترجمه فارسی چیز بگوییم بله چیزی هست خداوند متعال لذا اطلاق شیع به خداوند متعال در لسان روایات می شود از طرفی هم خداوند متعال سایر مخلوقات رو لامن پدید آورده است از چیزی پدید نیاورده است یعنی نه تنها که مواد دیگری پایه های دیگری در خلق خداوند متعال دخیل نبوده و خداوند متعال اون رو از خلق رو از اونها نیافریده بلکه از خودش هم نیافریده خلق کرده لامن من شیع به نحو مطلق از چیزی خداوند متعال نیافریده در حالی که شیء هم به خداوند متعال اطلاق می شود که خب این واضح است نفی وحدت شخصی وجود و باطل بودن این قول به کلی که حالا به بعضی از این روایات در ضمن بحث های گذاشته اشاره شد خب من یک روایت دیگری رو در اینجا بیان بکنم این روایت رو هم بر مرحوم کلینی ذکر کردند در کتاب و توحید خودشون باب و نهی عن الجسم و سوره حدیث شماره سه محمد ابن الحسن ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن اسماعید ابن بزیع ان محمد ابن زید قال جئت إلى الرضا عليه السلام آمدم خدمت آقا امام رضا عليه السلام اسأله ان توحید حضرت در مورد توحید سؤال بپرسن فاملا علی حضرت بر من املا کردن الحمد لله فاطر الاشياء انشاءن هم برای خدایی است که اشیاء رو آفریده از باب انشاء بدون تر بدون نقشه قبلی و مبتدآها ابتداءن به قدرتهی و حکمت هی لامن خداوند متعال ابداع کرده است همه خلق رو لامن شیء نه از چیزی فیا بتل الاخترا که اگر از چیزی باشد دیگر اخترا دیگر ابدا دیگر اون خلقی که خداوند متعال از چیزی اینطوری نیافریده اون دیگه معنا پیدا نمی کند. ولا علت فلای صحه ابتداء به خاطر مثلا یک سبب خاصی علت خاصی که اون علت خارجی باشد که دیگر ابتدا معنا پیدا نکند خلق ماشا کیفشا متوحدا بذالک هر چیزی رو که خواست آفرید به هر نحوی که خواست آفرید اینطور نبوده است که مجبور باشد در خلق خودش الزامی وجود داشته باشد که این گونه بیافریند متوحدن بذالک لاظهار حکمت و حقیقت ربوبیته لا تضبطه العقول يقول اون رو ضبط نمیکنند ولا تبلغه الاوهام اوهام و فکر انسان به اون نمیرسد ولا تدرکه الابصار ابصار اون رو درک نمیکنند ولا یحیط به هی مقدار هیچ مقداری به اون احاطه ندارد که این روایت هم با سند مقبولی رسیده در کافی شریف که علاوه بر این دسته از روایاتی که ما از کردیم روایات فراوان دیگری در ابواب مختلف توحید می توانیم پیدا بکنیم که به انهای مختلف نحی نفی و رد وحدت شخصی وجود از آن استفاده می شود علاوه بر روایات متعددی که در کتاب توحید و ابواب توحید روایات ائمه طاهرین علیهم السلام رسیده ظهور کلیه روایات، کلیه روایات سر تا سر روایات که خداوند متعال رو در مقابل خلق قرار داده، خب ظهور همه این‌ها نفی وحدت شخصی وجود می باشد چون بنابر وحدت شخصی دیگه تقابل حقیقی بین خدا و خلق معنا نخواهد داشت در حالی که ظهور کلیه روایات تقابل بین خداوند متعال و خلق هست که عزیزان با مطالعه روایات بهرهمندی از فرمایشات احل بیت اسمت و می میتوانند روایات دیگری رو در زمینه های دیگری در نفی و رد وحدت شخصی وجود پیدا بکنند اما استدلالاتی که قائلین به وهدت شخصی وجود تمسکاتی به بعضی از روایات در زیل آیات کرده بودند که اونها در ضمن در بحث آیات مورد بحث و نقد قرار گرفت حالا به روایاتی که مستقلا به اینها تمسک اند ما انشاءالله اشاره میکنیم اولین استدلالی که شاید یکی از مهمترین استدلالاتی به روایات باشه این استدلال هست که در بعضی از روایات آمده خداوند داخل در اشیاء هست اما نه چیزی که داخل در چیز دیگری باشد دخولش به نهو دیگری است خوب اینها میگویند این دخول خداوند متعال در اشیاء جز با وحدت شخصی وجود معنان می شود و حتما معنای این و اون چیزی که اراده کرده اند وحدت شخصی وجود میباشد و اینکه اصلا وجود اینها وجود خداوند متعال هست حالا از جمله این روایت که این روایت رو هم در کافی آمده بابا انه لا یعرف الا به حدیث شماره دو قدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد ان بعض اصحابنا ان علی ابن اغبت ابن قیس ابن سمعان ابن ابی ربیحه بیحم مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم که این فرد هم مثلا رسول خدا رو در کرده قال سؤال امیر المؤمنین عليه السلام به ما عرفت ربک رب از آقا امیر المؤمنین سوال شد که به چی پروردگار خودت رو شناختی؟ قال به معرف به معرف نفسه و اون چیزی خودش به من نفسش رو خودش رو شناساند قیل و کیفه عرفه نفسه چگونه خودش رو به تو شناسان؟ قال لا به صورتان هیچ صورتی شبیه اون نیست ولا یحس بالحواس با حواس درک نمی شود ولا یقاس و بالناس هیچ نحوه قیاسی با مردم نمی شود یعنی شما در زمینه های مختلف نخواهید خودتون رو با خداوند متعال قیاس بکنید مثلا در زمینه علم الهی نیایید اینطوری فکر بکنید که خب علم ما برای بندگان از این ها هست و به این نحوه هست و به این انواع هست پس علم الهی هم لابد که به یکی از این انواع باشد نه لای غاصب ناس قریبون فی بعده قریب است نزدیک در ضمن دوریش بعیدون فی قربه در زمن دوری قریب است فوق کل شی بالای هر چیزی هست فلای غالوشای اون فوق اما هیچ چیزی فوق اون قرار ندارد امام کل شی و لا له امام در مقابل هر چیزی هست اما هیچ چیزی در مقابل اون نیست هی hey, حضرت در این فرمایش هی hey, بین نفی و اثبات رو میروند یک چیزی رو اثبات میکنن بعد اون رو دوباره به یک نحوه دیگری نفی میکنن داخل فی الاشیاء لا کشیئن داخل فی داخل در اشیاء هست اما نه مثل چیزی که داخل در چیز دیگر است این نهب دخولی که ما فکر می‌کنیم نیست و خارج من الاشیاء لا کشیئن خارج من شی و خارج از همه اشیاء هست اما نه مثل چیزی که شما خیال میکنید خارج از چیز دیگری است سبحان من هو ها کذا و ها کذا غیره پاک و منزه است کسی که این گونه است و غیر از اون این گونه نیست و لكل شیء مبتدأ هر چیزی از جانب خداوند متعال شروع می شود اول کل عالم خداوند متعال هست و خلق از جانب خداوند متعال هست خب در نقد این ما به نکاتی اشاره می کنیم نقد شماره یک اولا اینکه که ظاهر فقط همین یک روایت در این زمینه وجود داره که این روایت هم با یک سند خاصی رسیده که هم تعدادی مشهول در این سند هستند و بسیاری از روات و وساعت این سند هم حذف شدند در این جاینی جا. واسطه هایی که حالا احمد ابن محمد ابن خالد که در این سند قرار گرفته بعد از این را نرکده بعض اصحاب بقیه همه تا زمان این مثلا صحابی رسول خدا این کسی که تصور خدا رو درک کرده و داره از آقا امیر مثلا سوال برسه خب اینها حذر شدند. هر از ظاهر فقط همین یک روایت وجود داره و یک روایت دیگری هم که در توحید و امالی صدوق هست که اونم وضعیت سندیش به همین گونه هست که اون هم از آقا امیر روایت شده که حضرت به این نحوه عبارت میفرمایند هو و وفل علی غیر ممازجه اون در اشیاء هست بدون ممازجت ممزود شدن. خارج منها علا غیر مبایده. خارجم هست اما بدون بینونت که یک چیزی مثلا فاصله شده باشد و بینی در اینجا قرار گرفته باشد. خب این وضعیت این دو دوتا روایت. در حالی که خب روایاتی با اسناد خوب و روایات متعددی با اسناد خوب در نفی بودن خداوند متعال در اشیا وارد شده که ما به بعضی از اونها اشاره کردیم که اون در خلقش نیست و به بعضی دیگر هم الان اشاره میکنیم الله خب شریفی است که هم مرحوم شیخ صدوق در توحید نقل کردن از جناب محمد ابن یهیل عطار انعبیه ان ابنه که جناب خدای یحیلاتار باشنن ان ابن عیسی ان الحسین بن سعید که احمد ابن محمد ابن یساس که اینا همه ثقه هستن خوبه ان الحسین بن سعید که حسین ابن سعید اهوازی با این اطلاقش ان القاسم ابن محمد که جناب قاسم ابن محمد که خب ایشون علاوه بر این که جناب حسین بن سعید احوازی که بسیار جلیل قدر هست نقل میکنن که الاز ظاهر همین قاسب ابن محمد جوهری هست که ایشون مشهور هم هست و با این طبقه حدیث هم می سازد و این اطلاق معمولا انصراف به خود اون فرد مشهور مشهور به کار می رود. جز به رواد کامل و زیارات هست که بنابر بعضی از قائلینی که این روات رو قبول دارن ایشون سره هست و علاوه بر این که جناب حسین ابن سعید از ایشون در جاهای مختلف نقل کرده که داله بر اطمینانیشون هست. اجلاه دیگری از جمله جناب ابن ابی امیر و جناب صفوان که هم جز وس‌هاب اجماع هستند که بسیار جریل قدرن هم علاوه بر اینکه اینها جز اشخاصی هستند جناب ابن ابی امیر و صفوان که در بحث مشایخ و سقاد اینها مورد نظر هستند که مشایخ این بزرگواران سقه هستند که بحث بسیار مفسریست و در اونجا ثابت می‌شود. که مشایخ این بزرگواران در نزد امامی اینها سقه بودند که بحث مفصلی است و به الله در زمان حاضر خودمون هم بسیاری از علما این رو قبول دارن لذا خب به وجوه مختلف این جناب قاسم بن محمد هم ثقه هستند انج علی ابن حمزه که سقه از ان عبی بسیر از جناب عبی بسیر که ایشون هم بسیار جلیل قدره تقریبا مثل همین سند رو جناب کلینی هم نقل کردن در کافی که فقط یک فرقی در ابتدای سند هست دیگه ان العطارن ابیه نیست خود جناب محمد ابن یحیی العطار از احمد ابن محمد ابن ایسا نقل میکنن که این رو مرحوم کلینی آورده است خب این روایت روایت با سند خوبی است که عبی بسیر نرمو کنه قال جا عراجون انلا عبی جعفر علیه السلام شخصی آمد خدمت آقا امام باقر علیه السلام فقال له یا ابا جعفر اخبر نیان ربک رب بکمتا کان یا امام باقر خبر بده به من از پروردگارت که کی بوده است فقال ویلک وای بر تو انما یقار لم لمیکن فکان متاکان به چیزی که نبوده بعد بود شده است گفته می شود که کی بوده ان ربی تبارک و تعالی کان لم یزل حیا خداوند متعال ازلی بوده بلا کیفن کیفی ندارد و لم یکله کان هیچ زمانی ندارد اصلا خداوند متعال ولا کان لکون کیف برای بودنش کیفیتی نیست شما نرید دنبال اینکه حالا خداوند متعال چگونه بوده است کیفیت بودن خداوند متعال چگونه بود اصلا کیفی ندارد خودش خالق کیک پس ولا کان له عین هیچ عین و مکانی ندارد ولا کان فی شیئن. در هیچ چیز نیست خداوند متعال بلا کانه علا شیئن بر هیچ چیزی هم نیست روی هیچ چیزی هم نیست و لب هی مکانن هیچ برای بودن خودش مکانی خلق نکرده خداوند متعال که طبعا اگر وحدت شخصیه رو بخوایم بگویم لا اقل یک مقداری از خداوند متعال در مکان است برای این مقدارش مکان خلق کرده بلکه خود اون مکان هم خداست خب در اینجا سریع هست در این نفی اینکه خداوند متعال در چیزی نیست باز روایت دیگری است که بله این روایت که از شد در اصول کافی باب, باب کون و مکان حدیث 3 و در خود توحید هم آمده که مرحوم علامه مجلسی هم این رو نقل کردن از کتاب توحید ام. باز دوباره روایت دیگری است که مرحوم شیخ صدو از کتاب توحید نقل میکنن که من آدرس هر دو روایت رو از بهار مرحوم علامه مجلسی نوشتیم که بهار همون کتاب و توحید بابون نفیه نفی زمانه و المکان و الحرکته و الانتقال که روایت قبلی حدیث شماره 23 بود و این روایتی که از می بکنیم حدیث شماره 26 هست که عبی ایشون فماید مرحوم پدرشون که جلیل قدرن آن عهدی که همون علی ابن ابراهیم باشن آن عبی که ابراهیم ابن هاشم همه ان ابن محبوب از جناب ابن محبوب که از اصحاب اجماح هست ان حماد ابن جناب به حماد ابن عمر هم به نحوی که ابن محبوب چند جا جاهای مختلف از ایشون نقل کرده که خود همین بر وثاغته ایشون هست ان الان ابی عبدالله السلام از آقا امام صادق علیه السلام قال حضرت فرمودند کذبه دروغ میگوید من زعم ان الله عز وجل فی شیء دروغ میگوید کسی که گمان میکند خداوند متعال در چیزی هست او من یا از چیزی هست او علی یا بر چیزی هست خب این روایات هم این روایتاتی که از شد که خب با اسناد خوب بود و روایات مختلف دیگری که در نفی مکان و عین از خداوند متعال خب این روایات از جناب ائمه معصومین رسیده از جمله این روایاتی که عرض می‌کنم که روایات دیگری هم از شد در بحث‌های گذشته که من از میکنم به یک روایت که دو تا روایت که عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان احمد ابن محمد ابن عبی نصر که جناب بزنتی هستند که همه ثقه هستند قالا جا ارجوا الى ابي الرضا عليه السلام این عده من اصحابنای که در ابتدای اسناد کافی آمده در بحث‌های گذشته عرض شد که اینها مشتمل بر سقات هستند و بعضی از اینها قطعا ثقه هستند لذا سند از این جهت مشکلی ندارد خب روایت با سند خوب که شخصی آمده بود خدمت آقا امام رضا علیه السلام سوال هایی کرد حضرت این رو فرمودند با روایت تو مقداری مفصل است در ذمه روایت حضرت فرمودند ابو ابوالحسن علیه السلام ان الله تبارک و تعالی خدا تعالی عین بلا عین خودش عین رو عین قرار داد مکان رو مکان قرار داد اینکه اصلا کجا هست رو آفرید در حالی که خودش عین و مکانی ندارد و کیفل کیف الکیف بلا کیف خودش کیف رو آفرید در حالی که هیچ کیفیتی ندارد همه انواع کیفیاتی که شما در نظرتون هست اینا همه مخلوق است و ساحت الهی اینها بدور است باز در روایت که خب این روایت رو کتاب و توحید اصول کافی باب الکونه و مکان حدیث شماره دو هستش که در حدیث شماره پنج هم که سند این روایت هم خوب هست که آقا امام صادق از قول آقا امیرالمؤمنین می‌فرمایند که اینه سؤال اون ان مکان اصنین که خداوند متعال کجا هست این سؤال از مکان است و کان الله ولا مکان خداوند متعال بوده در حالی که مکان این بوده. که خب همه اینها نفی بودن خداوند متعال در اشیاء که خودش یک نوع مکان هست و بودن در شیء مکانی هست و بودن در مکان هست رو که خب شامل می شود و همه اینها نفی مکان می کند مطلق از خداوند متعال خب این نقد اول که خب این روایات متعارضاتی دارد و معارضاتی با اسناد عالیه دارد هم نقد شماره دو این که خب در این روایات خروج هم بیان شده خارجون فی چرا شما فقط جانب دخول رو گرفتید و این رو میگویید که حتما عین خود همون وجود هست خداوند متعال خود خروج هم در این روایات آمده و چه بسا با توجه به خروجی که در اینجا بیان شده معنای دیگری در اینجا ارائه شده نقد شما رئیسهی که از میکنم اینه که اصلا دخول در این روایات اصلا با وحده شخصیه نه تنها که نمی سازد دخول در یک شی ربطی به وحدت شخصیه ندارد ربطی به وحدت وجود عرفانی ندارد بلکه اصلا حد وحدت شخصی هم میباشد خود هم این روایات رد وحدت شخصیه هست و اون اینکه اول خداوند متعال اشراعی رو ثابت کرده ثابت فرموده که اینها هستند بعد خداوند متعال در اینها هست در اینها دخول دارد خب، خود این اصلا به ظهور این روایات همه دارد سراحت نخی وحدت شخصی رو می یک طرف خدا یک طرف اشیاء و مسئله دیگر دخول خداوند متعال در این اشیاء هست که این به رد وحدت شخصی وجود هست و این روایات حالا اگر هم بخواهیم بازی خورده تنزل بکنیم با حلول سازکارتر است که خداوند متعال مثلا حال شده است در مخلوقات که این هم رفتی به بحث شخصی ندارد البته خب لزومی هم در حلول مستلح ندارد که حلول مستلح این است که خداوند متعال در این قالب ها جای گرفته در این قالب مخلوقات خداوند متعال قرار گرفته نه می ای این دخول رو به نحو دیگری معنا کرد که حتی مستلزم حلول نباشد چطور نور در میان شیشه قرار دارد از میان شیشه گذر کند شیشه شیشه هست نور هم نور هست اینها سر جای خودشون هستند اما خب به نحوی هستند که اینها تزاحم مکانی با همدیگر مثلا ندارند اینها مزاحم همدیگر نیستند چطور هست که ما مثلا در این اتاق میلیون ها میلیارد ها امواج هست از بدن ما می کند الان در بدن ما هست اما تزاحمی با ما ندارد خب این دو رو هم میتوانیم به یک نحوه اینگونه بیان بکنیم که وجود خداوند متعال به ای هست که تزاهمی به حسب وجودی یا به حسب مکانی با مخلوقات ندارد. خب اگر بخوایم حتی به ظاهر صرف این روایات هم اخص بکنیم به این نحوه می شود که باز رفتی که به وحدت وجود ندارد حتی با حلول هم چه بسا این سازگاری ندارد و الزامی ندارد که ما این رو به این نحوه به نحوه حلول معنا بکنیم نقطه چهارمی می کرز بکنیم اینه که با توجه به روایاتی که نفی مکان و کیفیت می کند از خداوند متعال طبیعین صحیح این روایات به این نحوه هست که وقتی خداوند متعال مکان نداشت خب نه تنها قریب مکانی نیست بلکه بعید مکانی هم نیست کما اینکه در این روایات بود که قریبون فی بعده بعیدون فی قربه خداوند متعال نه تنها که قریب مکانی نیست اینطور نیست که حتی بعید مکانی باشد بعید مکانی هم نیست یعنی نه خداوند متعال نزدیک هست به حساب مکانی از طرف دیگر دور هم نیست به حساب مکانی خداوند متعال وقتی مکان نداشت داخل مکانی نیست خب وقتی داخل مکانی نیست خداوند متعال از طرفی خارج مکانی هم نیست وقتی که این گونه بود لذا نسبت همه چیزها با خداوند متعال از حیث مکان برابر است همه چیزها نسبت یکسانی با خداوند متعال از حیث مکان دارند که همین معنا هم در روایاتی رسیده که نما منظره فی القربه و البعد سبا و روایات دیگری که در این زمینه آمده خب وقتی که خداوند متعال اینگونه بود نسبت داخلی ترین جزء انسان و عشیاء با خارجی ترین جزء اونها با خداوند متعال یکی هست لذا از این جهت می گفت که خداوند متعال داخل است؟ یعنی خداوند متعال همین نسبت مکانی که با خداوند متعال با این پوست درونی دارد با اون داخلی ترین جزء اعماق وجود انسان هم دارد خب اگر این نسبت رو این نهو قربی که ما اینطوری حس می کنیم با این جزء خارجی دارد با همون جزء داخلی هم دارد خب می شود از این نحو ما خداوند متعال رو داخل بنامیم اما لا کشی این داخل فی همین تعبیری که در روایت آمده بود نه اینکه شما دخول رو به ذهنتون بیاد تعبیر روایت اتفاقاً تعبیر دقیقی است که لا که شیء داخل فی شی نه مثل چیزی که دخول در چیز دیگر پیدا بکند یعنی حقیقتا اصلا دخول نیست لا که شیء داخل فیشی خب این صریح هست در اینکه خداوند متعال داخل است اما از باب اینکه چیزی در چیز دیگر باشد نیز خارج هم هست خب وقتی که نسبت‌های کیست نسبت با این جزء خارجی و نسبت جزء داخلی کیست میشود گفت خداوند متعال خارج هست اما خارج هم نه از باب اینکه چیزی از چیز دیگر خارج باشد لا کَشَیئِنْ خارجن مِنْها که در این روایت بود لذا خب در این طبیعین کاملا معلوم شد منظور این ربایت و حتی طبق نبایت دیگری که فرمودند که دخولش از باب ممزود شدن نیست و خروجش از باب اینکه خداوند متعال بینی داشته باشد فاصله ای مثلا قرار گرفته باشد خارج اللابه مباینا اینکه بین مباینه این بین اینکه یک بینی یک فاصله ای در اینجا بین خدا و اشیاء باشد اینطور نیست که در بعضی از تعابیر روایات دیگر هم این تعبیر رو داشتیم که با ان لا بتراخی مسافت خداوند متعال جدا هست اما فاصله در اینجا نیافتاده فاصله مکانی در اینجا نیافتاده که خداوند متعال بین مباینت و فاصله و مسافت بین خدا و سایر اشیاء ندارد خب که پس تبیین صحیح این روایات هم به الله کاملا معلوم شد نتیجه بحث این شد که این روایت هم هیچ بونه ربطی با وحدت شخصی وجود و وحدت عرفانی وحدت وجود عرفانی ندارد بلکه خود همین روایات هم رد وحدت شخصی می باشد و این نکتر هم خوب هست که توضیح بدیم که مشکل قائلین به وحدت وجود عرفانی و وحدت شخصی اینه که اینها ابتدا این وحدت وجود و وحدت شخصیه رو از غیر آیات قرآن و روایات این رو فهمیدن و اون رو پذیرفتن و مسلم گرفتن این رو بعد در حال دست و پا زدن هستن که برای اینها هم یک صورت دینی پیدا بکنند و یک معیداتی از آیات و روایات هم برای اینها جفت و جور بکنند برای اینها بسازند لذا و یک همچنین تمسکاتی به آیات و روایات دست دستدن که تمسکات بسیار دور از وادی هست که هر کسی که نگاه میکند کاملاً ذهنش و استظهارش این مقابله میکند با این گونه تمسکات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.